آی اسقری عزیز من همیشه برام جای سوار بوده تو چرا انقدر آروم و ساکت و خیلی بای دیفالت داری سر به زیر کارتو انجام میدی این یه اتفاقیه که شاید تو هر هزار تا پسر یه بار بیفته این یک توانایی خدادادیه به نظر من که تو بدون هاشیه میتونی کار بکنی دقیق همون جوری که یک مالی باید کار بکنه دقیق به موقع به اندازه مسئولیت پذیر متعهد صفت خوب خیلی داری اینشالله که روز به روز به صفتهای خوبت اضافه بشه و زندگی شخصیت هم پر بشه از این صفتهای خوب در ترهیت موفق باشی و یکی از ترهی ایران بشی و ما یه روزی اسمتو بشنویم و بگیم که ما بایشون همکار بودیم و پوزتو بدیم برای تاروزی موفقیت بودیم.